28 همین حدیث فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم اکرم الشعر موهاتون را اکرام کنید تکریم کنید بزرگ بدارید الان بزرگ داشتنش یا اکرامش اون ارزش قائل شدن به مو ارزش قائل بشیم به اون موی قشنگی که الله بهمون داده از اون ریشا شونش کنیم به هنگام وضو بشوریم خصوصا نزاریم که آلوده بشه نزاریم که گرد و خاکی توش بمونه موهای سرمون هم اینطور باید موها اکرام بشه اون, جای، اون وقتی که نیاز داشته باشه به روغن روغن مالیش بکنیم اکرامش بکنیم ارزش بهش بشیم اون موهایی که زائده اون موهایی که سبب عرق و بدبویی بدن میشه از موی زیر بغل موهای شرمگاه اون موها رو حتما موی زیر بغل که کنده بشه بهتره نمس بشه موسن که الان اسباب ابزارها خیلی راحت شده راحت شخص میتونه اون موهای زیر بغلش بکنه با شیره یا با اون عسل یا با اون چیزی که با شکر میسازن و اینا قشنگ میتونه اون موهای زیر بغلش رو بکنه نمیتونه دردش بیاد به قول معروف با تیغی اونجا رو تمیز و پاک کنه موهای شانگاهش شرم هم اینطور اینها توصیه شرعه اون مویی که باید رها بشه موی ریشه اون مویی که باید شونه بشه و اکرام بشه موی سر اون مویی که باید زده بشه موهایی که حرق توش جمع میشه و اصا بدبی بدن میشه اونها باید از بدن پاک بشه اینها توصیه شرعه ولی خب نباید اسراف بشه در مثلا در موی سر رسول الله میکنن از این که انسان زیادی شونه به سر بشه دست همیشه دست سرش بکشه و شونه بکنه این از وسواسیه و از یعنی محبت دنیا در دل انسان سبب شده محبت دنیا در دل انسان مؤمن بیاد که اینها انسان باید ازش پرهیز بکنه از این وسباسی بس و حب زیادی دنیا و آراستگی زیادی انسان آراسته باشه ولی دیگه نه اینقدر که سبب اصراف بشه و وقت خودش رو ضایع بکنه به خاطر این مسائل